بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و على آله تیبین تاهرین لا سیما بقيه الله في الارضين اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام واليك يعود يهود السلام سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة ورحمه الله وبركاته السلام علی امت الحادین المهدیین السلام علی جمی انبیاء الله و وملائكته و السلام علینا و علی عباد الله الصالحين، السلام علی امیر المؤمنین السلام علی صدیغت الشهیده السلام على الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي ابن الحسين زين العابدين السلام على محمد ابن علي باقر علم النبين السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى ابن جعفر الكاظم السلام علی علي ابن موسى الرزا. السلام على محمد بن علی الجباد السلام على علی بن محمد الحادی السلام على الحسن بن علی الزکی الاسکری السلام على الحجت بن الحسن القائم المحن. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بغیت و بغی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علی بن الحسين وعلى أولاد الحسین وعلى أصحاب الحسین قال الحسين عليه السلام صبرا على قضاك يا رب لا اله سواک یا قياس المستغيثين مالی يا رب سواک ولا معبود غيرك صبر على حكمك یا قیاس من لا قياس له اينايت داريد كه شبهاي گذشته با توجه به این مناجات امام حسین در روز آشورا با ذات اقدس احدیت درسها و سرمشقهای فراوانی برای زندگی همه ما ها به ویژه آنانی که پیرو مکتب ابی عبدالله هستند داده می شود چارشب گذشته دو, دو کلمه صبر و غذای الهی رو با هم معنی کردیم چون امشب و فردا شب توفیق دارم در منظرتون باشم اجازه میخوام دیگه اون رو ما بسنده کنیم گرچه جای بحث بسیاری هنوز داره. ولی مجملا در چهار شب گذشته به این نتیجه رسیدیم. که غذای پروردگار که با قدر همراه است که شامل سنت و مشیت الهی هم خواهد بود یعنی قواعد و قوانین و نظام حاکم بر عالم چه در جنبه تکوینش چه در جنبه تشریعش اما عبارت صبر اون استقامت و پایفشاری در تطابق با این قضا و قدر در جهت نیل به کمالات چه در اون که موانعی نمیگذارد قدرت ایستادگی برای برطرف کردن موانع چه در اون که عوامل موثری لازم است ایستادگی و صبر و استقامت به جهت بهرهمندی از اون عوامل مؤثر این دیگه چهارشب شب گذشته کافی بود اما عبارت رب در اینجا چه بیان می کند و ادامش لا الهه کلمه اله امشب فقط رو کلمه رب و ارتباط رب با صبرن علا قزا امام است سخن امام حساب داره اونم با خدای خود سخن میگه صبرن علا غذایک یا رب خب میشه گفت صبرن علا که یا الله صبرن علا که یا رحمان صبرن علا که یا رحیم و ها کزا چرا کلمه رب در اینجا انتخاب شده شبیه همین ما در آیات قرآن کریم هم داریم که چرا در بعضی جاها کلمه رب به کار برده شده الله به کار نرفته در بعضی جاها کلمه الله به کار رفته کلمه رب به کار نرفته بسیار نکات ظریف و دقیق مخصوصا در ساموز در اینجا نافته شده حالا به اندازه یک جلسه انشاءالله با توفیق الهی با هم بحث کنیم انایت بفرمایید اول میریم در لغت عرب رو کلمه رب ببینیم در کتب لغت وقتی به واژه رب رسیدن این رو چگونه معنی کردن؟ میگن رب در اصل به معنی مالک و صاحب سم میگن رب بلبیت یعنی صاحب خانه قضیه معروفی که ابرهه آمد و شترهای عزت ابوطالب طالب رو, رو دزدید و اینها و بعد گفت رب ابل و للبیت رب من صاحب شترانم خانم برای خودش صاحبی داره اما لغت دانان میگن یک معنای دقیق تری در اضافه بر صاحب و مالک تو رب نافته شده اون چیه همه قشنگی و زیبایی اینجاست در اصل به معنی مالک و صاحبی که به تربیت و اصلاح آن میپردازد یعنی اگر شما صاحب یک خونه باشید این خونه رو رها کردید داره خرابه میشه به تعمیرش به اصلاح رسیدگی منزل حفظ این خونه نمیپردازید یه باغی تأسیس کردید شما ایجاد کننده باغ هستید ولی دیگه ولش کردید نه آب میدید نه کود میدید نه سمپاشین میکنید نه رسیدگی میکنید اینجا رب باغ نیستید گرچه مالک باغ هستید اگر رب است یعنی به اصلاح و تربیتش میپردازد و اونچه لازمه رشدش برایش به وجود میآورد در تفسیر تصنیم جلد یک صفحه سی یه توضیح بسیار قشنگی در رابطه با لغت رب داده شده. ربوبیت سوق دادن چیزی به سوی کمال آن است. خیلی حرف قشنگه. ربوبیت سوق دادن چیزی به سوی کمال آن است. و رب کسی است که شعن او سوق دادن اشیا به سوی کمال و تربیت آنها باشد. و این صفت به صورت ثابت درو باشد حالا با مثالهای این رو انشالله روشنتر عرض خواهم کرد معانی دقیقتری هم در بعضی از لغات صاحبان لغت گفتن چون کلمه رب در زبان عربی گاهی از رببه گرفته میشه گاهی از رببه برخی لغت دانان گفتن اونجایی که رب از ربوه باشه به معنی تربیت اونجایی که از رببه باشه به معنی صاحب و مالک ولی کسانی که دقت بیشتری داشتن مثل کتاب التحقیق تحقیق به کلمات القرآن الکریم میگه نه این نکته ظریف رو باید دقت کنید وقتی رب از ماده ربه باشه در مورد تربیت انسان ولی رشد و تربیت بدنیش مورد نظره اما وقتی که تربیت از ریشه رببه باشه به معنای سوق دادن به سوی کمال معنوی یعنی شما یه وقت مربی دارید میگید مربی تربیت بدنی کارش بدنسازیه این مربی مربی بدنسازی است ممکنه بگه من به اخلاق شما کاری ندارم من به علم شما کاری ندارم اگه میخوای از نظر لذا اسمشم گذاشته باشگاه بدنسازی او با بدن کار داره حالا اگر همین مربی یا یه مربی دیگر تو این باشگاه گذاشتید میگه من میخوام روزی یک ساعت با شما راجب اخلاقتون کار کنم میخوام یک ساعت با شما راجب رفتدار و منش خانوادگی و اجتماعیتون کار کنم استعداد شما را در جهت انسان شدن و آدمیت پرورش بدم اینم مربیه ولی مربیه جنبه های معنوی اخلاقی انسانی انسان لذا میگن رب اگر از ماده رببه باشه بیشتر به جنبه معنوی و اخلاقی رب داره اگر از جنبه کلمه از ریشه ربوه باشه بازم پرورش و تربیته ولی به جنبه های ظاهری و جسمانی خب این خیلی فشرده معنای رب خیلی فشرده حالا یکی از اسماء های پروردگار در قرآن کریم ربه یا رب ما زیاد به کار میبریم و خیلی جاها هم بعد از الله هم به کار میره الحمد لله رب العالمین اللهی که رب عالمین است خب اسم خدا در فرهنگ معارف دینی مخصوصا اسلام که با اون ریز کاری هایی که بینها دقت کرده یه اسم ذات داریم و اسم صفت اسم ذات اسمی است که اشاره به ذات حضرت حق دارد اون که فقط کلمه اللهه الله کلمه جلاله‌ای است که ذات حضرت حق رو با این نام می‌خوانند و لذا الله جامع جمیع صفات کمالی است و ضمیر ای که اشاره به ذات است هوه هو الله هو اشاره به ذات حضرت حقه لذا کلمه هو از کلماتی است در فرهنگ دینی ما که بسیار مقدسه چون اشاره به ذات میکنه الله کلمه است که به ذات حضرت حق اشاره میکنه لذا ما حق نداریم اسم هیچ انسانی رو الله بگذاریم چون الله اسم ذاته عبد الله میتونیم اسم بگذاریم عبد اون ذات خب اما اسم صفت چیه اسم است که به اقتضای فعلی از افعال پروردگار به پروردگار نسبت داده میشه مثلا خالق یا خالقو یا رازقو یا محی یا ممیت یا مرسل یا خالق یعنی اون ذات مقدس که فعل آفریدن دارد پس خالق اسم است بر این صفت چه صفت؟ صفت آفرینش پروردگار. پس اگر ما کلمه خالق را برای خدا به کار بردیم در رابطه با آفرینش و خلقش. اگر گفتیم یا رازق اسم حضرت حق را ذات حضرت حق را در رابطه با روزی دادنش داریم به کار میبریم اگه میگیم یا مهی حیات بخشیش. اگر گفتیم یا مومیت جان گرفتن و میرندن انسان ها اگر گفتیم یا مرسل یعنی رسول فرستادن و اون عوامل هدایتی رو برای بشر قرار دادن خب حالا یکی از این اسم ها که در قرآن و روایات زیاد به کار رفته و ابی عبدالله الحسین علیه السلام در این مناجات با خدا سبرن علا غذا اکه یارب کلمه رب است خب رب که گفتیم صاحب و مالکی که مملوکش را به کمالش سوق دهد و به اصلاحش بپردازد خب یا رب یا خالق یعنی خلق کردن پس یا رب یعنی چی یعنی ای خدایی که مخلوقت را تربیت میکنی، به سوی اون کمالش سوق میدی و پیش میبریم. و لذا همون گونه که در توحید خالقیت اگر من معتقد باشم خدا برای آفرینش نیازمنده به شریک است میشه شرک در خالقیت ببینید ما میگیم خداوند برای هدایت رسول فرستاده خداوند برای هدایت کتاب فرستاده کتاب عامل هدایت خدا در این عالمه پیامبران و ائمه عامل هدایت خدا در این قرآنن نه در عرض خدا که بشه شرک در این صفت پروردگار در طول خدا یعنی خدا در نظام هستیش اینا رو قرار داده که این کارها از اونها بر بیاد حالا خدا در نظام خلقت آفتاب را قرار داده است که بتابد. ابر و باران را قرار داده است که باعث رویش گیاهان بشه حالا اگر من بگم در نظام خلقت خورشید و ابر و باران و اینها هم ارز خدا هستن میشه شرک در خلقت نعوذ بالله اما بگم در نظام خلقت خدا این خاصیت رو به اونها داده که به اذن الله این آثار رو داشته باشن و لزوم من بگم ای ابر بباره نه یعنی تو خودت مستقلی یعنی خدا این قدرت رو به تو داده که میتونی انجام بدید همون گونه که در خلقت ما باید توحید خالقیت رو بفهمیم در ربوبیت هم باید توحید ربوبیت رو بفهمیم توحید ربوبیت یعنی چی؟ یعنی خداوند برای کمال مخلوقاتش چه انسان چه غیر انسان فرقی نمی حالا می کنم مخصوصا انسان که مورد بحثه خداوند برای مخلوقاتش چه انسان چه غیر انسان فقط خالق نیست فقط رازق نیست فقط محی و ممیت نیست خدا ربم هست یعنی نظام تربیت تربیت یعنی چی یعنی پرورش استعدادها به فعلیت درآوردن قوای درونی یک موجود خدا ربم هست یعنی نظام بروز و به ظهور رسندن استعدادهای مخلوق را هم معین میکند اگر این کار نکنه رب نیست اگر خدا خلق نکنه بهش خالق میگید نمیآفرینه پس خالق نیست اگر خدا هیچ کسو جانشو نگیره ممیت معنا نداره اگر خدا رسول نفرسه که مرسل بش نمیگیم خداوند اگر نظام تربیتی قرار نده نحوه حرکت بسوی کمال و مالکی که مملوکش را نحوه اصلاح جهت نیل با اون هدف براش مشخص نکنه پس این خدا فقط خالق است دیگه مربین رب نیست با یه مثال ارز میکنم در ابتدای عرائزم بود ببینید اگر یک باغبانی بیاد یک باغ بسیار جالب و زیبایی ای رو ایجاد کنه درختای عالی، زمین بسیار عالی، آب خیلی خوب در کنار این باغ انواع امکانات مثلا می بدادنی همین درست کرد تا اینجا شد چی؟ ایجاد کننده باغ اما باغ راها کر رفت نه آب میده، نه کود بش میده، نه سمپاشی میکنه نه نیروهایی میذاره که به این باغ برسن علب های هر جا بکنن کنن کنند کنن اینجا این باغبان تنها ایجاد کننده باغ بود. اما دیگه پرورش دهنده باغ نیست و باغ پرورش پیدا نمیکنه. اگر خدای عالم که ارهم و راه است. اگر خدای عالم که حکیم مطلق یا مطلق حکمت است. انسان را با این عظمت بیافریند اما تربیت این انسان را برای انسان مشخص نکند به حکمتش لطمه وارد میشه یا نه؟ لذا وقتی که حضرت موسی علیه السلام طبق آیه پنجاه سوره تاها با برادرش هارون اومدن تو کاخ فرعون تو چه کاری میگی من خدام فرعون گفت پس خدای شما چیه عبارت رو ببینید قرآن کریم از زبان حضرت موسی و برادرش هارون چی فرمود ربنا ربنا الذی اعطا کل شیءن خلقه او ثم هدا رب اونه که هم خلق میکنه هم هدایت میکنه حالا ارتباط خلقت خالق بودن با هادی بودن و رب بودن این سواجه حالا چند آیه قرآن امشب به اندازه‌ای که وقت اجازه بده شاهد براتون عرض ارز میکنم نفرمود رب ما خالق ماست حساب داره خب خالق تنها خالق رب نیست رب اونه که منو اگه خلق کرده راه تعالی و کمال و هدایت و سعادتمندی مرا من هم برای من معین کنه همونجوری که از کتاب اللغت برای شما عرض کردم حالا ببینید قرآن کریم در این رابطه چه زرافتی به کار برده در برخی از آیات که روی قرآن ما کم کار میکنیم من یک آیه در سوره مبارکه زمر آیه شست و دو تا اینه دقت دقیقی بفرمایید الله الله شد اسم ذات اون ذات لایتنا ها که لایتنا شدتا مدتا عدتا هر چی بخوایم بگیم دیگه لغت نداریم کمه ذات اقدس الهی الله خالق کل شیءن همه چیز آفریده خالق هر چیزیست. من منو شما رو سنگ و چوب و آسمان و زمین و ملک و فلک و چی و هجر و شجر و خالق کل شی پس اینجا یه اسم صفت برای ذات اقدس الهی به کار برد عنوان خالقیت اما بلا فاصله و هوا علا کل شیءن وکیل وکیل اینجا یعنی چی نفرمود خالق خلق کر رها کر را برید آقا هر کاری دلتون میخواد بکنید بزنید تو سر کله هم دیگه دیگه به من چه ربطی داره من فقط شما رو خلق کردم رها کردم نگوزه بالله مثل اینه که مثلا بگیم یه استادی دانشکده دایر کرد کلاس دایر کرد شاگردارو آورد کنکور دادن نمره آوردن قبول شدن تو کلاس نشون بعد پاشود رفت دنبال کار خودش میگه مسخره کردیم ما رو امتحان بدید مطالعه کنکور بدید چنین کنید چنا کنید بعد آوردید ما رو سر کلاس نشوندی بعد رها کردی رفتی اصلا اصل از اینجا به بعده اگر تدریس تعلیم و تربیت در این کلاس نباشه تا اینجا آوردنش میشه چی میشه ابس ابس غبیح غبیه از ذات اقدس الهی سر نمیزنه لذا خدا خلق نمیکنه رها کنه الله خالق کل شیئن و حوبه. زمیر هو ضمیر اشاره هو به اون الله علا کل شیءن وکیل این کلمه وکیل رو من یک کمی اینجا توضیح ارز کنم آقا شما یه وقت مثلا ور کنید که می‌خواید با یک بنده خدایی در رابطه با یه دعوایی مشکلی دارید برید پیش قاضی میگید من بلد نیستم قوانینم نخوندم چگونه باید حق خودم رو بگیرم آقا حضرت علی رشته تون اینه تخصصتون اینه مطالعه کردید تو رشته حقوق تحصیل کردید شما وکالتو منو قبول کنید یعنی من کارو به شما برگزار می میکنم این کاری که به شما برگزار کردم شما میشید وکیل من یعنی برای من اون کاری را که لازمه برای احقاق حقم انجام بدم شما انجام میدید خب خدا چه کاری رو وکیل ما میخواد برای ما انجام بده در بعد از است طبق آیات دیگر و حتی برداشت عقلی زیل این آیه یعنی شما رو تحت حمایت خودشون میگیره رها نمیکنه. بهترین کاری که خدا میخواد برای ما انجام بده چیه؟ راه کمال ما رو به ما نشون بده البته به شکلی که جبری نباشد نگه شما برو تو خونه بخواب من به جای تو اینجا مراحل تکامل رو برات انجام میدم میگه آنچه لازمه تربیت شماست براتون معین میکنم و شما از نظر دانستن یا به تعبیر شرعی اتمام و حجت عوامل سوق به سوی کمال مشکلی نداشته باشید حالا برای اینکه این برداشت رو از قرآن رو ارس کردم از کجا آوردم به این معنی آیه دیگه قرآن براتون می کنم اینو توضیح میده ولی یه سلوات میخواد. سلو، سوره مبارکه مزمل آیه شماره نه رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَقْرِبِ لَا إِلَهَ الله کلمه الهش رو فرد شب بحث میکنم رو ارتباط این رب اول اله بعد این همونی که سوره بسم الله الرحمن الرحیم قلعوزو به رب ناس ملک ناس اله ناس امام حسین هم اول سبرن علا غذای که یا رب لا اله بعد اله رو بد فرمودن حالا اینجا رب المشرق والمغرب مشرق مغرب کنایه از کل هستی مثل رب العالمین هر چه در این عالم هستیست پرورش دهندش راه سوق به سوی کمالش را او عهدهدار است. رب المشرق و لا اله الا هو الهی اله جز او نیست فتخز و وکیلا پتخز و وکیلا اینجا میگه شما او رو وکیل قرار بدید اون آیه چی فرمود؟ الا کل شیعن وکیل هر چرا خدا آورده خلق کرده خدا وکیله اینجا میفرماد چون رب مشرق و مغرب یعنی رب همه هستی پتخز و وکیلا شما او رو وکیل برای خودتون قرار بدید یعنی چی؟ یعنی اون وکالتی که اونجا کرد خدا دار شده برای شما تربیت شما را. اما چجوری تربیت شما را شده که شما او را وکیل قرار بدید؟ یعنی بگید اون چه تو صلاح میدونی ما طبق اون عمل کنیم. لذا مثلا وکیل دادگستری به شما میگه دارم بهت میگم رفتی دادگاه اینو بگی یا شما بگی باشه ولی من این یکی رو میگم پس شما او رو وکیل قرار ندادی دروغ میگید ل... یکی از بزرگان در محضرش بودیم جمله بسیار زیبایی در زیل این آیه شریفه و من یتوکل الله فهو و حسبو بحث ها کردن یکی گفت تفسیرش اینه یکی گفت تفسیرش اینه یکی گفت اینه ایشون سر شنداخ پایین فقط یه اشاره کرد گفت وکالت دادی دخالت نکن همه معنا توش بود. وکالت دادی دخالت نکن. فتخز و وکیلا. یعنی رب کل هستی اوست. پس رب شما قرار او باشه. اگه رب شما قرار او باشه وکیل قرار بده ببین راجب تربیت چی میگه. اگه به شما میگه شراب نخور تا آدم بشی بگو چشم. به شما میگه دروغ نگو تا رشد پیدا کنی بگو چشم. اگر او معین کرده لازمه تربیت شما حجاب است بگو چشم اگر او گفته لازمه تربیت نماز است بگو چشم فتخص و وکیلا تربیت را به خالق برگزار کن این میشه توحیده در ربوبیت اون وقت ربوبیت در نظام تکوین در نظام تشریح. در نظام تکوین خدا مدبر عالم است یعنی شما اگر میبینید خورشید و صده. اتار و دو زهرب و زمین و مریخ و مشتر و زحل و ارانس و نبتون و با این مدار معین دارند به گرد و خرشید میگردند طبق بیان سوره یاسین و شمس و تجری لمستقر لحازال که تقدیر و عزیز الالیم و قدرناه و منازل حتی عاد کل ارجون القدیم للشمس و لها انتودر کل قمر ولل قمر و سابق و نهار و کلون فی فلکن يسبحون. یک من قرار دادم که شما وقتی این خورشید این وسطه نیروی جاذبه خورشید نیروی گریز از مرکز این سیاره یه مدار درست کرده در این مدار زمین داره می گرده. در این مدار اتارود و زهره و زمین دارن می گردن. به همون نسبتی که به مرور در اثر تبدیل شدن به انرژی از ماده خورشید جاذبه خورشید کم میشه این نسبت با کره زمین و بقیه سیارات حفظ میشه مدار به هم نمیخوره که اینها فرو بریزه این تدبیر و تربیت تکوینی پروردگار در عالمه چه نظامی در عالم قرار داده که هیچ چیزی حسابش به هم نخوره یه نمونهش اینه مثلا تو کل کائنات لذا هرچه ها توی این عالم مطالعه میکنن موریسین یه زیستشناس معروف اروپاییه. کتابی داره به نام راز آفرینش در رابطه با آفرینش ما انسانه ها. میگه یک،, یک تکیاخته، یک سلولی که ساده موجود زنده است، ترکیبات شیمیایی که برای موجودیتش وجود داره میلیاردها مولکول اسید آمینه است. یه مولکول اسید آمینه نظم ترکیبات شیمیاییش از نظم پیچیده ترین کامپیوتر زمان ما پیچیده تره. این تربیت تدبیر عالم نیست. یعنی یک نظامی قرار داده که باید این سلول اینجوری با نه من یکم سادش بکنم. حالا کمی تخصیصیه. سادش بکنم. آقا قرار انسان غذا بخوره. دهان قرار داده. دندان قرار داده. زبان قرار داده. بزاق برای ترشو قرار داده. خب حالا چهار راه این هنجره که قرار غذا رو گرد بدیم. خب یه راه به سوی م... م... مری برای اه... اه نای برای ششه. یه مری برای معده دو تا سوراخ های بینیه و خود دهانه خب سر این چهاررا غذا چکار کنه از دهان برگرده بره تو دو تا سوراک بینی از بینی بیاد بیرون بره تو نایی بره تو شش آام میکشه باید تو خب چی کار میکنین؟ یه نظامی تدبیر کرده آلم رو ربوبیت تکبینی خدا. کاری کرده یه دریچه گذاشته رو نای به نام اپیگولتد دو تا زبان های کوچیک گذاشته و زبان بزرگ شما به محزی که حالت قورت دادن میگیرید نوک زبان بزرگ میچسبه به نوک سقف راه دهان بسته میشه دوتا زبان کوچک میاد سوراخ دو تا سوراخ بینی رو میبنده در اپی ای گلوت میفته روی نای رای نای بسته میشه مری باز میشه سه تا چراغ این چهار قرمز یه چراغ سبز میشه مدبر عالمی که یدب امر من از سماو الی عرض کیه در این عالم توحید ربوبی در مقام تکوین اون وقت این خدا برای تکوین بدن من الله خالق و كل شی و هو على كل ان وكيل این نظام دقیق رو به قول ابن سینا در کتاب شفا از فرورفتگی کف پا کوتا نیومده از قرار دادن ابرو برای اینکه عرب تو چشم شما نریزه و موجه با این خاصیت هیچی رو فروگذار نکرده و وقت برای تربیت از ماده رببه که رشد و کمال معنوی ساکت یه گوشه میشینه ما رو به حال خودمون راها میکنه انسان لایق بشه برو هر کاری دلت خواستی خودت انجام بده استاد رفت سر دانشگاه همه رو آورد تو کلاس که من میرم بیرون دانشجو خودتون برید جلو اینجا خدا ربه لذا به محضی که در سوره هم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بحث ربوبیت رو در کنار الله برای ما مطرح میکنه که یکی از بارزترین اسم صفت حضرت حق برای تعالی من و شماست. اجازه بدید یه استفاده دیگه قرآنی هم بکنم. بعد از روایات معصومین استفاده کنم. بعد برم جمله ابی عبدالله حسین علیه السلام. ببینید در اول سوره مبارکه بقره در 20 آیه ذات اقدس الهی انسانها رو دستبندی میکنه. ماها ممکنه دستبندی کنیم زن و مرد. قربی و شرقی. سیاه و سفید. دانشمند و بی سواد نمیدونن پولدار رو بی پول خدا اینا هیچ کدوم رو حساب نکرده انسان رو تقسیم کرده به سه دسته متقین کافرین منافقین میگه کافرین بدن منافقین بدن انسانی ارزش داره که متقی باشه بعد از بیست آیه که مستحضرید اول سوره بقره همتونم آشنا ارزش متقین رو بیان میکنه تو آیه یک راه رسیدن به مقام تقوی و جزء متقین شدن رو با این آیه اینجوری بیان میکنه چقدر عمیقه به خدا قسم اگر یک کمی انصاف به خرج بدن جوانای ما تحصیل کرده های ما رو آیات قرآن فریاد میزنن عظمت قرآن رو که مگه میتونه این کتاب مال ذهن بشر باشه بعد میان میگن آقا مسیحیت بهتر از اسلام نیست یهودیت بهتر از اسلام نیست زرتشتیت بهتر اسلام رو شناختی؟ اونا رو شناختی؟ من بارها این رو عرض کردم شاید باشه یه همایش ای بود در تورنتو یهودیا بودن مسیحی بودن بندم در خدمتشون بودم. یه ادعایی کردم اولش خیلی برخورد. بعد گفتم من از عهده آیم برون ببینید اثبات میکنم نه گفتم اگر حقیقت اسلام ثابت نشه نه یهودیت قابل اثبات نه مسیحیت نه هیچ دینه دیگه آه, آه این حرفا چیه گفتم حالا با هم بحث میکنیم گفتم راه اثبات حقانیت یک پیغمبر چیه معجزه معجزه نباشه از کجا ما بفهمیم این پیغمبر حقه خدا معجزه رو گذاشته تا حقیقت پیغمبر ثابت بشه خب معجزهی حضرت موسی چی بود کو عصا انداخت اجداه گفت من که نایدم. من لاگه شک کنم بگم دروغه من نمیتونم این نقل رو باور کنم فرض کنید معجزه حضرت ایسا چی بود مرده رو زنده میکرد من که ندیدم کو امروز به من نشون بدید اما معجزه پیغمبر اسلام غیر از همه این کارهایی که در تاریخ میکرد میگم باشه شما باور نکن قرآن موجود ما اثبات میکنیم قرآن معجزه است و قرآن میگه حضرت موسی پیغمبر بود قرآن میگه حضرت عیسی به شما خدمت کرده نبوت حضرت موسا و حضرت رو اثبات کرده شما حالا ببینید غیر از دلائل بسیاری که در معجزه بودن قرآن میتونید ارائه بدید. شما نگاه کنید دستبندی کرده. انسانه های مؤمن متقی، انسانه کافر، انسانه منافق. بعد میگه حالا میخوای متقی بشی؟ چون من ربم دیگه، ربم میخوام را نشون بدم، نمیخوام به اجبار شما رو اون که میشه جبر میخوام اونچه لازمه تربیت شما برای رسیدن به اون مقامه من خدا اتمام حجت کنم نکنم. خب چی میگه یا ایوهن ناس نفرمود یا ایوهن لزین آمنون نفرمود یا مسلمون یا ن... ایو ناس یعنی هر کی میخوای باشید ناس در زبان عربی یعنی انسان اله هم سرش در اومد جمع الجمع مثل قوم اقوام خود قوم جمعه اقوام همه قوم ها یا ایوهن ناس ای همه انسان ها هرکی میخوای باشی اسفحانی تهرانی ایرانی شرقی غربی، اروپایی امریکا هرکی میخوای باشی انسان من خدای شما برای من انسان که اسفحانی تهرانی فرق نمی کنه بنده منید من میخوام به همتون راه تربیت رو بگم یا ایوهن ناس او عبودو ربکم و خلقكم خلقکم و لذی نمن قبلكم تتقون به خود خدا قسم اگر هیچ دلیلی برای معجزه بودن قرآن نبود بنده بعد از این همه سالها که سرم توی ای عرفا بوده این آیه معجزه بودن قرآن رو برای من اثبات میکنه ببینید با چه روالی داره میاد جلو یا ایوه الناس هر کی هستی اعبدو او عبدو یانشی بندگی کن انشالله فرداشب فردا شب فرق عبادت با اطاعت رو عرض خواهم کرد عبادت به معنی اطاعت هم میاد ولی اطاعت به معنی عبادت نمیاد حالا فرقش چیه میجریم تو بحث فردا شب که در رابطه با الوهیت حضرت حق مطرحه عبادت برای الوهیت باید از اطاعت بره بالاتر به عبادت برسه که حالا بعد ارزم کنم انشالله حالا اینجا دقت کنید یا ایو الناس اعبدوا اطاعت کنید اطاعت آبدانه که حالا اطاعت آبدانه چیه باشه؟ کی را رب بکن؟ خب رب این میشه رب یعنی تربیت کننده بنده من و شما انسان میشیم متربی که قرار تربیت بشیم رابطه تربیت بین رب و متربی چیه؟ دستورالعمل های تربیتی اگر یکی بگه من مربی شمام ولی هیچ دستورالعمل تربیتی نداشته باشه حرفش درسته؟ و مسخره است. مثلا فرض کنید میریم خدمت حالا این روزا ارفانه های مجازی میدونید خیلی غوغا میکنه اینقدر از این مدعیان زبدتالعارفین و زبدتالفلان و از این بازیگری‌ها زیاده آه بنده بله می‌توانم شما را به ما خب بفرمایید چه کار کنم حالا برو ببینم حالا پس یا یه چیزایی میگه انجام میدم بدتر میشه رب باید دستور العمل داشته باشه مربی حالا اگر دستور العمل مربی غلط بود متربی رو بیچاره میکنه به ویژه در رابطه با انسانیت انسان آقا بنده سی سال تحت تربیت ایکس باشم بعد از سی سال بپهمم همش اشتباه بود چه کار کنم؟ مگه شوخیه؟ میگه عمر میشه جبران کرد اون وقت خدایی که ارحم و راهمینه منو به حال خودم رها میکنه میگه زیر پوشش تربیت های ایکس و ایگرک که امروز یه چیز میگن فردا یه چیز میگن پس فردا یه چیز میگن بعدش میگن ببخشید آقا اشتباه کردیم هفتاد سال مارکسیستا تو این کره زمین تازندن چه ادعایی کردن کتاب جزبه رسانه رادیو چی چی چی که ما چه میکنیم کنیم مدینه فاضره بعد از هفتاد سال دیگه این سن من شماست اومدن پشت رسانه تو دنیا پخش شد ببخشید اشتباه کردیم راه این نبود ا؟ ما خرگوش آزمایشگاه بودیم مرا ببرید روما ما امتحان کنید بعد از 70 سال خدا داریم لذا میگه الحمدلله رب العالمین رب اوس لزا میگه او و ربکم اونی که داره دستورالعمل میده چون پس اطاعت کن تبعیت کن تبعیت شما به حد عبودیت برای رب اما یه تیکه اضافه کرده عجیبه او ابدو ربکم الذی خلقکم و الذین من قبلکم همونی که شما رو خلق کرده قبلی ها رو هم خلق کرده لعلکم تتقون اگه میخوای جزون دستها بشی خدا میپسنده یعنی میخوای آدم بشی میخوای تربیت بشی باید اطاعت آبدانه داشته باشی نسبت به ربی که خالق شما و خالق قبلی خب ارتباط ربوبیت و خالقیت چیه؟ شما در سوره مبارکی اعلا میگید بسم الله الرحمن الرحیم سب به اسم رب بکل اعلا؟ الذي خلق وصبوا والذي قدر فهدا این هدا هم با همو نظام تربیتی الهی میشه دیگه تربیت الهی هدایت خلق هدا خالق کل شی و علا کل ان وکیل اینجا در اولین آیه‌ای که بر پیغمبر نازل شد در قاره راب اسم الله الرحمن الرحیم اقرب بسم رب الذی خلق ارتباط ربوبیت با خالقیت چیه؟ خوب نایت بکنید بعد اون وقت روایت از پیامبر و امیر و حدیث قدسیه در این رابطه بکنم آدم کیف میکنه میخواد پرواز کنه ببینید فرهنگ دینی مخصوصا مکتب بیت چیه ببینید اگر مربی بخواد متربی رو تربیت صحیح بکنه باید متربیش و خوب بشناسه اقتضاشو بدانه طبق اون شناخت و اقتضا دستورالعمل تربیتی بده یا نه اگه نشناس آقا یه مشت گندم به من دادید یه مشت بذر چمن یه مشت بذر مثلا درخت سیب به من میگید پرورش بده تربیت کن من نیستم فرق سیب با چمن چیه؟ فرق چمن با گندم چیه؟ همه رو یه جا میکارن تا اوم از ساب شد، همه رو با ماشین چمنزنی میزنم. شما به من می خندید چرا؟ چون نمیدونم آقا سیب یه اختزایی داره، گندم یه اختزایی داره، چمن یه اختزایی داره. اقتضای این انسان از نظر خلقت چگونه است؟ کی این انسان از خدا که خالقشه بهتر می شناسه؟ دزار رب باد خالق باشه. شیخ شاهبودین سهروردی یه جمله خیلی قشنگی داره. خیلی عمیقه میگه حادی انسان هدایت کننده انسان به تعبیر دیگر مربی انسان که میخواد انسان رو تربیت کنه بیاره بالا حادی انسان یا باید خالق انسان باشد یا از طرف خالق انسان باشد خالق انسان باشه چون خالق دیگه طبقی این شریفه و لقد خلق نل انسان و ما تबस بصبحی نفس ونحن اقرب الیه من حبل الورید ما انسانو خلق کردیم ما بو از رگ گردنش نه. ما میدونیم در درون این انسان چه خبره و وقت بخ... او باید مربی باشه یا من و شمای ی که تو قرن بیستم الکسس کارلی که جایزه نوبل در انسان شناسی گرفته کتاب نوشته انسان موجود ناشناخته چی جرأت داره بگه ما انسان رو شناختیم؟ هر چه جلوتر میریم شگفتی ما در عظمت و پیچیدگی مخصوصا روح انسان بیشتر میشه و لذا قرآن کریم میفرماد یسالونه که ان الروح قل روحو من امر ربی و ما اوتیتون من العلم الا غلیلا آقا من یک شاهد اینجا تجربی عرض کنم عزیزان من این مطلب الان روشن روشن هست یا نه در قرن 20 و این مختصر قرن بیستی یکم علم پزشکی قوقا کرده یا نه قوقا کرده بابا دیگه قلب رو بردار قلب دیگه بذار کلیه رو بردار کلیه دیگه بذار بابا دیگه واقعا تو این بدن قوقا کرده آیا در کره زمین نمیگم ایران یا آسیا کره زمین در قرن 20 و این مدت 21 رو مسائل روان پزشکی روان شناسی روان کابی مسائل این چنانی به اندازه پزشکی کار نکرده چندین دانشگاه و دانشکده داریم موفقیتش در حل مشکلات روانی به اندازه حل مشکلات جس، جسمی بوده به مراتب کمتره چرا؟ چون پیچیده است لذا قرآن کریم می‌فرماد با ما اوتیتوم الا غلیلا ما تو مسائل روانی روحی انقدرین این انسان پیچیده است به قوله المؤمنین علیه السلام جرمون وانك جرم صغیر وفیکن ثول عالم اکبرو یک عالم عظمت در این دنیای وجود انسانه و اگر اون عظمت انسان از نظر استعداد به مرحله ظهور و شکوفایی برسد رسد آدمی بجایی که بجز خدا نبیند نبی ند. به که تا حد دست مقام آدمیت مقام خلیفت اللهی داره این انسان مظهر خدا میشه مظهر صفات خدا میشه خب این نیازمنده به دستور العمل تربیتی داره کدوم مربی؟ اون مربی که این انسان رو بشناسه کی به اندازه خالقش او رو میشناسه لذا چی میفرماد؟ اعبدو رب بکن بله بله اون مربی که داره تو تربیت میکنه اطاعتش کن شما آقا زاده تونو میفرستید مدرسه از کلاس اول ابتدایی تا دانشجوی دانشگاه باشه فرق نمی کنه میگه عزیز من حالا که داری زحمت میکشی میری حرف معلم تو گوش کن حرف استاد تو گوش کن حالا هر چی این تربیت حساس تر باشه مربی لایقتر باشه گوش دادن به او چی میشه بیشتر مطرح میشه لذا اینجا میگیم آقا ما اگر قرار تربیت بشیم کدوم مربی از خدا من یه مثال دیگه ام بزنم بعد فرض بفرمایید دو تا مدرسه داریم، مدرسه آ، مدرسه ب. مدرسه آ، معلمینش لایق، با تجربه، دلسوز، علاقمند من، سابقه بیست سال، سی سال تعلیم و تربیت هم دارن و نشون دادن موفقن فارغ تحصیل های مدرسه علمن و عملا و چای خوبی در اومدن. مدرسه دیگه نه معلمینشون تجربه رو دارن نه سابقه ای دارن نه کار خیلی خوبی کردن فارغ التحصیلاشون هم چنگی به دل نمیزنن شما هم قدرت دارید فرزندتون رو در اون مدرسه بهتر بگذارید فرض کنید مشکل مالی هم ندارید از شما پول هم نمیخوان شما حاضرید بچه‌تون رو به جای اون مدرسه توی این مدرسه بذارید قبول میکنید عقل میپذیره؟ حالا اگر مربی خالق باشد بگه من خدا قبول کردم شما رو تربیت کنم دستورالعمل به شما بگم اگر میگریزی بیگانه بگریز چرا زین یار آشنا میگریزی؟ کجا داری میری؟ وقت جانم به فدایت یا علی مناجاتش رو ببینید؟ مناجات علی رو ببینید؟ سلام الله علیه تو ما وقتی مردم شق عباس نغمه میکنه الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی رب ان تکما احب فاجلنی کما توحب الهی کفا بی عزن این عزت برای من بس که دارم فرمانبری میکنم کنم فرمان تو رو میبرم من هر جا سر نساییدم. من انان اخیارم به دست هر که ندادم. الهی کفا بی ازن ان اکون لکه ابدا. من متی تو شدم. چون تو برترینی که نظام تربیتی تو میتونه منو آدم کنه و کفابی بی فخرن این افتخار برای من بس انتکونالی ربا تو تربیت منو اهددار شدی رب من شدی به من افتخار دادی من شاگرد مکتب تو بشم که منو پرورش بدی انتکما احب تو اونجوری هستی که من دوست دارم فجعل نی کما تو منم اونجوری قرار بده که تو دوست میداری. حالا اجازه بدید اگه خسته نشدید یه آیه دیگه هم براتون مطرح کنم با سلوات بفهمم خسته شدید یا نه. نه چون سلوات خوب بود دوتا آیه میخونم اولیشو بگم آه، آه، سوره مبارکه انعام آیه 102. و زالکم الله ربکم لا اله الا هو این زالکم برمیگد با آیه قبل فرصت نیست آیه قبله بخونم شما عزیزان منظر رفتید آیه قبلشو ببینید آیه صد سوره انعام ببینید خدا خالق چنین چنان این همه نعمت ها آسمان زمین قرار داده اون الله رب شماست یعنی کی رب به قرآن میگه کی رب شماست الله الله یعنی چی؟ یعنی جامعه جمیعه صفات کمالیه خب لا اله الا الله. الوهیت رو فرد بحث میکنم غیر از او کسی سزاوار الوهیت نیست که شما بخواید در مقابل او سر بسایید خالق کل شی همه چیز او آفریده او، پس اطاعتش کنید حالا که این خدا حاضر شده رب شما بشه شما رو تربیت کنه فعبدوهو. پس اطاعت کنید بندگی کنید پیروش باشید کی را ربی را کدوم رب خالق کلشی و حوه علا کلشی این وکیل او حافظ نگهبان و عهدهدار انایت به همه است پس چرا این خدا رو را رها می کنی جایی دیگه میری اون وقت این که گفتم آیه دومم من بخونم اجازه بدید در آیه 164 اون وقت لحن قرآن تو همین سوره انعام تغییر میکنه در قالب انتقاد. دقت کنید تا اینجا معلوم شد. اون اسم صفت خدا که ربوبیت تکوینی و تشریعی خدا را نشون میدهد. یعنی طبق بحثایی که داشتیم قوانین و قوائد و نظام قضا و قدر تکوینی و تشریعی. تکبینی برای نظام خلقت اگر این نظامی خدا تو منظومه اصلا منظومه شمسی اگر این نظامی که خدا تو منظومه شمسی قرار داده به هم بخوره همه چی به هم میریشه همین نظام برای رشد من و شما و تربیت من و شما تو منظومه تشریعی عالم خلقت وجود داره با این تفاوت در تکبین ما دخالت نداریم در تشریع ما اختیار داریم هماهنگ هنگ بشیم یا نشیم حالا اینا چند آیه بیان کرد با اون توضیحات که دادم حالا در آیه 164 دقت کنید الله اکبر از عظمت قرآن قول پیغمبر بگو ها غیر الله ها غیر الله اکبر از این عظمه غیر الله را رب بگیرم وقتی او مربی رو دارم من جای دیگه برم ولی مثال من خیلی خودکانه است ولی چه کنم شاگرد دوره دکتران را بگیم آقا شما اگه حرف ما رو گوش کنید کلاس ابتدایی را میدن ثبت نام کنید هر عاقل بین حرف میخنده یا نه مثلا خاک بر فرق من و تمثیل من این کجا و اون کجا میگه من خدا خدار ربم الاس خالق کل شیء، الا کل شیء، وکیله او رو رد کنم او وقت سراغ X و Y و مکتب آب و مکتب ببرم که برای تربیت انسانیتم قول غیر الله عبقی ربن و هو رب کل شیعه الحمدلله رب العالمین و هوا اون زاوت اقدس با همه اون صفات کمالیه رب و کل شیعه خب اجازه بدید چند تا حدیث هم خیلی کوتاز سریع بخونم بحث امشب رو جمع کنم این روایات هم خیلی زیبا و قشنگ یک روایتی اینن هم در منابع اهل سنت اومده هم در منابع شیعه از پیغمبر اسلام که پیغمبر فرمودن خدا فرموده که حدیث قدسیه در منابع اهل سنت کنزل امال متقیه هندی جلد یک صفحه 482 منابع شیعی بهار جلد 82 صفحه 132 قال رسول الله قال الله تعالی پیغمبر فرمودن خدا فرموده ملم یرزب غذایی و قدری فلیل تمس ربن غیری <تصفيق> من به خدا وقتی بینا میرسم اصلا شدت حیجان از لذتی که از این مطالب میبرم نمیتونم خودم رو کنترل کنم خدایا چقدر ظریفه. اونی که راضی به غذاب و قدر من نیست یعنی چی؟ چند شب بحث دادم و قدر با توضیحات که دادم یعنی برنامه تربیتی خدا برای رشد من و شما دیگه اینه نمیپذیره؟ فالیلتمس ربن غیرو باش برو التماس از یه طرف مربی دیگه غیر از من کنه بره جای دیگه سر بزنه ببینیم حالا اونها اونو به کجا میرسونن ما میریم در خونه خدا تو هم برو جای دیگه ببینم تو به کجا میرسی ما به کجا میرسی مله این روایت دوم که باز همین دو تا مدرک خوندم یه چیزی هم اضافه کرده که ابا عبدالله حسین علیه السلام اول این واژه رو آوردن صبر رو ملم غذایی و ولم يصبر على بلایی فليلتمس ربًا سوای. اگر کسی به غذای من راضی نیست و اون امتحانات و آزمایش هایی که در نظام تربیتی من قرار میگیره تا شما طبق اون امتحان رشد کنید بیایید بالا بی این راضی نیستید فلیلتمس ربًا سوای پس برید یه رب دیگه غیر از من انتخاب کنید در روایتی که شیعه اومده یک کمیهم اضافش کرده من لم یرزع به غذایی ولم یشكر لنعمایی ولم یصبر علی بلایی فلیتخذ ربا سوای اگر کسی غذا و قدر و نظام تربیتی منو قبول نداره راضی نیست نعمت هایی که او دادم شکرشه به جا نمیاره صبر برون ابتلاعاتی که برای تعالیش لازمه نداره باشه بره سراغه مرم نظام تربیتی من اینه لذا امام حسین علیه السلام چی می؟ به خدا عرض میکنن سبرن علا یا رب استادیگی میکنم علا قضائک یعنی برون نظامی که تو قرار دادی وجم یا رب یعنی کسی که این نظامت برای تربیت منه و چون این نظام برای تربیت من و جامعه انسانیه من رزن به رزائک تسلیم من لغزائک لا معبود است باید امیر علیه السلام قرار الحکم حدیث شماره سی... 3.225 اشد و ناس ازابن یوم القیامه کسانی که فردای قیامت عذابشون از همه شدید تره المتسخت لغذا الله اونهایی که به قضای الهی خشم میبرزن به تعبیر دیگر برنامه تربیت الهی رو کنار میذارن خب معلومه دیگه با مثال ارز کنم جنبندی کنم آقا بنده وارد دانشکده شدم استادم رئیس دانشکده معاون آموزشی مسئولین دانشگاه، یه برنامه ریختن دیگه اگه قراره به من نتیجه قبولی بدن و فواعد درس خوندن دانشگاه را به من بدن من باید راضی به اون نظام و همراه با اون نظام پیش برم یا با اون نظام خشم بگیرم بگم این سیستم آموزشی چیه برای من گذاشتید یا برو بیرون اینجا اومدی اینه درس نیست برو بیرون حالا خدا میگه بنده ای منی میخوای طبق اون چه که من برای تو ما کردم جایگاه فی عبادی فتخلی جنتی باشه؟ این تربیت من اینه حالا خشم برفتی به تربیت من انک رجیم ان علیک لعنتی الایوم الدین میشه و وقت پس جانم به پای یا ابی عبدالله کلمه کلمش ببینید چقدر حساب داره صبرا علی غذا رب غذای تو بر مبنای ربوبیت توست ربوبیت تشریعی تو قضا و قدر تشریعی داره لازمه آدم شدن من در کلاس تربیت توی الله این است که پایفشاری و استقامت داشته باشم و این پایفشاری و استقامت به گونه ای که عزیزان ایزان تر با شما این عبارت رو شما بگردید در کتابهای شما میدونید اکثر تاریخ کربلا رو اهل سنت نوشتم به جهت اینکه قلم تا مدتی دمان بنالعباس دست درباریان بنیومیه و بنالعباس بود چیه خیلی مخفیانه و با چه زحمتی میتونست بنویسه همون تواریخی که اونا نوشتن و مبرخین درباری بنیومیه و بنالعباس نوشتن تاریخ تبری رو ببینید کامل ابن عصی رو ببینید و ها کذا سیره ابن عشام رو ببینید و نمونه های دیگر یک مورد به من نشون بدید کربلا از کربلا به شام از شام برگشتن به کربلا از کربلا به مدینه بزرگشون کوچکشون زنشون مردشون جوانشون پیرشون شکوه و بیتابی نسبت به تکلیفی که به اومده کرده باشن به من نشون بدیم نداریم؟ بله شکوه از بدی مردم کردن خدای این مردم چه به اینقدر بدن خدای مردم چرا اینقدر ظالمه خدای مردم چرا متوجه نیستن اینا دارن چیکار میکنن با خودشون اون تعبیر قشنگی که ازت حضرت زینب سلام الله تو بازار کوفه در خطبهشون مطرح کردن شما که اون زنی دارید که پنبره میریسه میریسه بد شروع میکنه اینا رو باز کردن و همه رو از بین بردن یعنی دارید همه کارهای خودتون هدر میدید شما چه کار دارید میکنید رو بدبخت میکنید اما در رابطه با خودشون چی میگن والله ما رایت الا و جمیلا به خدا و قسم زیبایی چیزی ندیدیم حالا چگونه صبری یه نمونش صبر زینب سلام الله علیه ها آقا شوخیه شما رو به خدا یه کمی دقیق کنیم کدوم مکتب داره؟ کدوم عالمی میتونه یه همچه انسانهای تحویل بشریت بده؟ مکتب تربیتی علاقه که باشن ببینید به کجا میرسه؟ چه میشه؟ از ابتدای کودکی تو خانه امیر و فاطمه زهرا شاهده جساراتی که در زمان پیغمبر به پیغمبر کرده خانه امیرالمؤمنین، شهادت حضرت زهرا و مظلومیت حضرت زهرا بعد مسئله امام مجتبی مظلومیت امام مجتبی، همه اینا رو دیده حالا هم داره میبینه آقا شوخی یه انسان با همه این حرفا بگه و الله ما رأی تو الا جمیلا این تربیت خدا اینه خب این ایامم وارد مجلس شام شده همین زینب رابطش با تشت چیه؟ حالا تو مجلس یزید نشستن؟ کدوم مجلس یزید؟ شامی که چنان آزین بستن که یکی از راه رسیده میگه چه خبر شهر آزین بستن؟ نعید قربانه، نعید فطره، مناسبت خاصی نیست چیه؟ گفتن یه عده خارجی خارجیه نیه از دین خارج شده یه عده خارجی بر امیرالمؤمنین المؤمنی نعوذ بالله یزید شوریده اینها رو کشتن زن و بچهشون رو دارن اسیر میارن ما به شکرانه این پیروزی شهر آزیم بستیم میگه ما هم استادیم کپتیم ببینیم چه خبره یه وقت دیدم که سرا بالای نیزه داره میاد حالا سر روز آشورا از بدن جدا شده الان روز اول سفر بیست روز گذشته سر بریدهی که بیست روز از او بگذره اما عجیب نور داره آقا کسی بخواد حق و بفهمه خدا چشمشو باز میکنه خدا اتمام و حجت میکنه نگاه به سرها کرد هیچ سراب سرای سرهای نمیخوره یه وقت دید که کاربان که داره میاد یه آقای سواره بر شطر به است دو تا پاها رو مجسم کنی تو ذهنتون دو تا پاها رو زیر شکم شطور با زنجیر بستن زنجیر آوردن بالا دور گردن گردندن دوتا دستار هم به اون زنجیر بستن صحنه رو مجسم کنید ولی چهره از نجابت و عظمت داد میزنه اینقدر به خودم مردم سنگ میزنن فحش میدن توهین میکنن من به خودم این حق ندادم رفتم جلو گفتم ببخشید آقا شما چه دعوایی با اسلام داشتید به تیپ شما نمیخوره فرمودن که قرآن خونده ای گفتم قرآن که کتاب ما مسلموناست <تصفيق> فرمودن حالا جواب بدید قرآن خونده یا نه بله شما این آیه رو در قرآن دیده قل قولا اسالکم علیه اجرن علن مودت فالغربا گفت این آیه که راجب اهل بیت پیغمبره خدا دستور داده به اهل بیت پیغمبر محبت و مودت بکنیم فرمودن خب سؤال دیگه ای دارم شما این آیه رو در قرآن دیده انما اینما یوریدولال یوزه بان کم و البیت و یوت احیر کم را این که راجب خمسه طیب است گوی این سر حسین خامس آل عباس من علی ابن الحسینم؟ چی دارید میگی گول پیرمرد داد زد وای برما بعد میگه گو آقا جون کاری از من بری شما ساخته اول فرمودن پول داری به این نیزه بده اینا رو راضی کن و ببرن جلو مردم به سرا نگاه کنن به ناموس ما انقدر نگاه نکنن من اومدم یه کمی پول به این نیزه دارا دادم اینا رو وادار کردم رفتن جلوتر. برگشتم اومدم کنار شطور آقا ارز کردم آقا کار دیگه از من برای شما ساخته است فرمود میتونی یه تیکه از این پارچه امامت رو پاره کنی؟ زیر این زنجیر بگذاری؟ میخواد پیام بده برای من و شما ما اینجوری صبر کردیم میگه من گوشه امامم رو پاره کردم وقتی زنجیر رو از گردن آقا برداشتم دیدم خون سرازیر شد اینجوری اینا رو کاخ یزید کردم. زن و بچه هم به زنجیر بستن حالا سر بریده یابی عبی عبدالله گذاشتن تو تشت یزیدم با تازیانه داره به لب و دندان عبی عبدالله میزنه زینب یه روز پاره جگر امام حسن مجتبا رو در تش دیده حالا سر بریده عبی عبدالله رو اما مگه خم به ابرو می آورد بر می خیزد و اون خطبه اون چنانی رو سر میده الله علیه که یا مولا صلى الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله يا رحمت الله الواسع يا باب نجاتنا يا ابن رسول الله، ایوه شهید و بکربلا یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا ان ن آتب جان او و زدش وان او يدي يا Is va اللهم باسمك اللطيف لا ازمل عز الجلل اكرم بمولانا صاحب الزمون يا الله يا الله يا Allah, يا مغلب القلوب ثنبت قلبي على دينك ماك بن ايغ ازي الحاج ود يا كافي اللهم انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا وارحمنا ارحمين و یا غیاسل ال مزتر ويا و یا دلیل المتحیرین یا آیت یا جلی سزا کریم و یا انیس و یا رب العالمین نجاتنا منك يا سيدي الكريم نجنا بخلصنا حق بسم الله الرحمن الرحيم اما يجيب المضطر اذا ذا و يجيب یا مجیب دوت المزترین به که مزترون پجرنا و یا قیاس المزتر المستقیسین بك إنا مستغيثون فأغس يا الله إلهي يا حميد بعق محمد يا عالي بأق علي يا فاطر بعق فاتمة يا محسن بأق الحسن یا قدیم الاحسان بهنگ الحسین و تسعه و ما 80 من ذريه الحسین اللهم عجل بليه کل فراد اللهم عجل بليه کل فراد خدا به ما خدا به انایت آمب و خواستت خدا به اسم اعظمت خدا به مقام مغربان درگاه خدا به عشق کودکان بیگنا خدا به آه سینه سوزان پیران مبتلا غسمت میدهیم امر امام زمان زابه خدا یا صاحب ما رو به فریاد ما برسو قلب وجود مقدسش از ما خوشنود و رازی بگردان تنفیق خدمت گذاری آسدانش به ما انایت بفرما ما رو در مسیر رضایش یاری بفرما ما رو در پتن آخر زمان موفق بدار جوانان ما نوامیس ما مملکت ما ایان دنیا دشمن شاد مفرما اموات و حقوق ما بلعخص مرمو ما جای معزز و از ساح غریق دریای رحمتت قرار بده دست هایی که مکنون به سوی تو دراز شده ناامید بر مگردان یا رب الحسین به قل خسای، اش به صدرالخسای، به زهورالحجّ، یار رب الحجّ، به قل الحجّ، اش به صدرالخسای، به زهورالحجّ، بعد جل الله مفی فرج مولانا صلّى السلام عليه و علیه و الله، وارل ارباحی که حلت بفنایی. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني زيارتكم السلام على الحسين و علي ابن الحسين و على أولاد الهوساين و على أصحاب الهوساين بركات الله و بركاته اللهم صل على علي ابن موسى والمرتضى الامام تقیه النقي و بجدی که فوق الاران ومن من تعد الصديق الشهيد صدیق شهید سلاتن کسیرتن تامتن زاکیتم متواصلتم متواطلتن ما کفول ما سلیت من اولیائی السلام علیکه یا مولا، یا اول حسن، یا علیه ابن موسی، ایو رضا و رحمت الله و برکاته السلام علیکه یا حجت الله، السلام علیکه یا بقیت الله، السلام علیکه یا صاحب الاسف از زمان، اجلالله تعالی فرجه که مسحن الله مخدجه، السلام و علی ابای کاتهرین و رحمت الله و برکات او الفاتحه